اسم این مکان زیبا پارک ناژوان است، اینجا در غرب اصفهان است. پارک بسیار بزرگی است؟ اسب و درشکه هم در آن دیده می شود. بله، این پارک دارای زمین ورزش، استخر و زمین بازی کودکان است. می توانید به اسب سواری و دوچرخه سواری هم بپردازید. چه خوب؟ پس اینجا یک تفریگاه عالی است ابتدا به باغ پرندگان می رویم می بیش از پنج هزار پرنده را در این پارک زیبا ببینید باغ پرندگان هم در اینجاست بله، آن طرف پارک باغ پرندگان است انواع پرنده های بومی و همینطور پرنده های غیر ایرانی در این پارک نگهداری می شوند. این پرندگان آزاد هستند؟ بله، اکثر این پرنده ها آزاد هستند فقط عقابها، شاهینها و جغد ها در قفس نگهداری میشوند چون آنها پرندگان دیگر را شکار می کنند. خانواده های زیادی برای تفریح به اینجا می آیند؟ بله تا دو ساعت بعد اینجا شلوغ می شود هم ایرانی ها و هم جهانگردان خارجی پارک را دوست دارند. این رودخانه که از وسط پارک می گذرد زاینده رود هست؟ بله زاینده رود از پارک ناجوان می گذرد و زیبایی اینجا را دوچندان می کند